وكل محدثه بدعة، وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد حمد سپاس الله متعال به جميعا بر همه نعمتهایش هایش على خصوص نعمت بارش باران رحمتش که در شب گذشته بر این شهر و منطقه نازل شد و از الله سبحانه وتعالی مسئله دارم که باران رحمت الهی بر ما مدام باشد و ادامه داشته باشد و ما نیز لیاقت بارش رحمات الهی رو داشته باشیم و شکرگذار و سپاسگذار نعمت الله اللہ سبحانه وتعالی باشیم بحث های متوالی و پی در, پی در رابطه با دعوت امر معروف نهی از منکر و صبر در راه دعوت صبر رسول الله صلی الله علیه و مسائل رو داشتیم و همینطور صبر اصحاب و یاران گرانقدر رسول الله صلی الله علیه و نیز در آینده خواهیم داشت اما در این خطبه گریزی میزنم بر موضوع دیگر و ادامه موضوعات رو در خطبای آینده دنبال خواهیم کرد یک از مسائلی که خیلی مهم هست در شرق یک از عبادت هایی خیلی مهم در واقع و متاسفانه جامعه ما به سمتی حرکت می کند که در قبال این فریزه مهم و عبادت مهم آنطور که باید توجه و عنایت ندارد بحث نماز هست بحث نماز هست. شهادتین به عنوان کلید ورودی ساختمان پر امن و امان اسلام مطرح است. کلمه شهادتین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله شخص شخصی غیر مسلمان با به زبان آوردن این شهادتین مسلمان می شود وارد دایره اسلام وارد ساختمان پر از امن و امان اسلام می شود و در واقع کلید ساختمان اسلام همین شهادتین هست و مهمترین بحث در بحث دین بحث توحید و بحث عقیده هست در بحث اعتقاد در بحث مسائل ایمان اما بعد از مبحث اعتقاد و باورها و مسائل علمی و مسائل باورها مهمترین مبحثی که در بحث عمل در بحث به اجرا در آوردن اون باورها و اعتقادات در بحث عبادتها مطرح هست مهمترین بحث اصلی ترین عبادتها و اعمال و در رأس همه اعمال صالح نماز مطرح است. نماز هست و اگر اسلام رو به عنوان یک ساختمان محکم و پر از امن و امان امن, ام، امن و امان دنیاوی و اخروی در نظر داشته باشیم نماز کجای اون ساختمان قرار دارد؟ سلات و عمود الدین نماز به عنوان ستون آن ساختمان مطرح است اگر ساختمانی ستون نداشته باشد فرو میریزد این ساختمان اصلا از هم میپاشد و نابود میشه همونطور که ساختمان خیلی معروف پلاسکو در تهران دیروز نابود شد در اثر سختگی و آتش سوزی از هم پاشید و تعداد بسیار از هموطنان جان باختند آنجا. از الله اللہ بر آنها. خدا مغفرت و رحمت میکنیم و بازماندگانشون رو صبر عنایت فرماید حادثه اسفباری بود که بالاخره رخ داد و امیدواریم که این گونه مسائل کمتر یا اصلا پیش نیاید و رو بحث ایمانی و استحکام و این مسائل بیشتر کار بشود اما نماز به عنوان ستون دین مطرح است نماز به عنوان اصلی ترین عبادت در شهر مطرح هست بانوان بزرگترین عبادت اصلیترین عبادت مطرحه الله سبحانه و تعالی بهترین انسانها یعنی پیانبران را به برپا داشتن نماز امر کرده و دستور داده که نماز رو برپا بدارند نماز رو به جا بیاورند. و هیچ کس از عدای نماز بینیاز نیست نمیتونه خودشو رو نیاز بدونه از این رغمبر ابراهیم علی نبینا و علیه صلات و السلام ابو الانبیاء می فرماید رب جعلی مقیم الصلاح و ذريتي رب جعلی مقيم الصلاه و منذریتی پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار بده و همینطور فرزندانم رو خودم به فرزندانم رو برپادارندگان نماز قرار بده از کسانی که نماز رو بر پا می‌دارند قرار بده دای ابوالانبیا ابراهیم علی نبینا و علیه و السلام بر رابطه با پیغمبر اسماعیل علی نبینا و علیه و السلام چی می‌فرمایند و کان یامر اهله بالصلاه و الزکات و کان یامر اهله بالصلاه و الزکات و کان عند ربه مرضيه نه تنها شخص باید خودش نماز بخواند، بلکه اهلش رو هم باید به نماز خانوادهش رو هم به نماز دستور بدهد پیغمبر اسماعیل و کانه امر اهله به صلاح اهلش و خانوادهش قوم و خیشش را به نماز و زکات امر میکرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم رو دستور داده الله سبحانه وتعالی که و امر اهلک به و لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولعاقبتو للتقوى رسول الله صلی اللہ وسلم دستور میداد که اهلت رو به نماز دستور بده و استابر علیها و خودت رو به بزن در این راه صبر پایداری بگن در راه اقامه و ادای نماز و امر کردن به نماز اونقدر اهمیت دارد که طفلی در گهواره به نام پیغمبر عیسی علی نبینا نو علیه السلام و سخن بسخن می آید انی عبدالله آتانی الکتاب و می فرماید اوصانی بالصلاه ما دمت حیا شما فقط تصورش بکنید یک تفلی در تفل شیرخاری در گهواره به سخن می آید و میگوید گوید اوصانی به صلات و زکا پروردگارم مرا به نماز و دستور داده تا مادامی که زنده هستند. پیغمبر سلیمان الانبینا و علیه صلات و سلام کسی که طوفان در اختیارش کسی که جنیان در اختیار و خدمت گزارش زبان پرندگان را میفهمد. یک نماز از ایش باعث میشوند یک نماز از او فوت بشه بعد مشغولش بکنند گردن اسبها را میزند رسول الله صلی الله علیه و نبی رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت برای جهانیان هست دلش به حال همه انسان ها چه کافر و چه مسلمان و چه یهودی و هر کسی میسوزد اما وقتی که در غزوه خندق در جنگ احزاب کفار و مشرکین و یهودیان آنقدر قدر او را مشغول کردن که نماز عصر از او فوت شد و بعد در وقت به مغرب نماز عصر به جا آورد نفرین کرد اونها را و فرموند مل الله قبورهم هم و هم نارا الله قبرهاشون و شکمهاشون را از آتش پر بگرداند ما را از نماز باز داشتند این هست نماز و اهمیت اون در اسلام همه عبادت ها در زمین فرض شدند جز نماز که در آسمان و در آسمان هفتم فرض شد هر عبادتی ممکن است فردی ساقط بشه یک سری شرایط باید وجود داشته باشد تا شخص زکات بدهد مالک اون مالش باشه یک سال بگذره به حد نصاب برسد روزه سالم باشد اگر در سفر باشه مریض باشه بعدن یا اگر نتواند فدیه میده به همینطور طور حج استطاعت مت اما برای نماز باید نماز ادا بشه بی قید و شهر. باید ادابش در هر صورت تا مادامی که زنده هست نفس میکشد عقل دارد این گونه نیست که اگر کسی مریض شد نماز نخونه اگر کسی مسافرت رفت دیگه نماز ازش ساقل بشه ابدا اگر مسافر هستی میگه قصر رو جمع بخون اگر مریض هستی بشی نمیتونه بشینی بخواب با آلت اشاره نماز رو باید خوند و از گردن انسان ساقت نمی شود. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد ترک نماز چه می فرماید؟ العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اون حد فاصل و مرز بین اسلام و کفر فرق بین ما و آنها یعنی مشرکین و کفار، نماز هست فمن ترکه فقط کفر هرکس اون رو ترک کر. نماز رو کرد پس کافر شده هرکس نماز رو ترکند کافر شده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم از کلام گوهربار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما الان توری شده که مجبور هستیم در رابطه با مزمت وعید و عقوبت ترک نماز سخن بگوییم و الا یکی از علماء می فرماید که علماء مغرب در 700 سال قبل وقتی بحث تارک و سلات ترک کننده نماز مطرح می شود می گفت این یک فرضیه هست فقط و در واقع وجود ندارد اصلا باورشون نمی که کسی نماز رو ترک بکنه می فرضیه است و فرض می کنیم اگر کسی این کارو کرد چیلیم چیزی می شود ولی این واقعیت ندارد میگفتن. ولی امروز می بینیم که به وقوع پیوسته فخلف من بعدیم من بعد خلف اضاع و صلاح و طبع الشهوات فسوف صوفای القو نسلی می آید و فخلف من بعدیم خلف نسلی بعد از اون نسل می آید بعد از نسلی که نماز رو برپا می داشته زکاة می داده ایمان و عمل صالح داشتند نسل بعدی می آید فخلف من بعدیم خلفن اضاع الصلاه و طبع الشهوات فسوف يلقون یلقونه نماز رو ضایع می کند نماز رو تباه می کند و ترک می کند رسول الله صلی الله علیه و آله از جبریل سوال میکند یعنی آیا در امت من افرادی میتوانند وجود داشته باشند که نماز به این سادگی و این آسانی اما به این مهمی را ترک بکنند جبریل میفرماید بله افرادی میآیند که نماز را ضایع میکنند و نماز را ترک میکنند و دین رو به صورت کلی با کالای دنیوی میفروشند دین رو نه نماز بلکه دین رو کلند با عرض دنیایی و کالای دنیا میفروشند و با این باورش برای رسول الله صلی الله سلام وسلم بسیار سخت بود به همین خاطر آخرین کلام رسول الله صلی الله وسلم آخرین توصیه های دلسوزانه و طلایی رسول الله در دم مرگ و قبل از از صلاح از صلاح نماز را برپا بدارید نماز را برپا بدارید در نماز سهل انگاری نکنید افراد به چند دسته تخصیم میشن در قبال نماز افرادی که به صورت کلی نماز را ترک میکنند تارک و هستند و آقابتشون معلوم کجاست جهنم هست ما سلککم فی سقر قالو لم نکم این المسلین چی شما را روانه جهنم کرد اولین دلیل اون اینو عنوان میکنند که لم نکو من المسلین ما از جمعه نمازگزارها نبودیم ما نماز خون نبودیم جهنم رفتیم پس هیچ بی نمازی تو بهش نمیتونه راه پیدا بکنه افراد دیگر هستند نماز رو بعضی وقتها ترک میکنن یه وقت میخونن یه وقت نمیخونن در مناسبت ها مناسبت های خاص جمعه شرکت میکنن ایدم شرکت میکنن ولی اگه رفتن یه گردش دیگه نمازا اونجا فوت میشه نماز سهل انگاری میکنن نمیخونن اینم بالاخره تحت تارک و سلاط قرار میگیره اما یا این کافر هست یا نه بین علماء اختلاف هست چه شخصی که بعضی وقتا نماز میخونه بعضی وقتا نمیخونه کافر هست یا نه امام احمد بر این است که کافر هست این شخصی طبق حدیث الاهداللدی بیننا و بینهم از صلاف و من ترقه ها فقط کفر هرکس ترک بکن نماز رو کافر هست پس این هم کافر هست و در قبرستان مسلمان ها دفع نمیشه کسی که نمازهایی از او فوت میشه این فتوه امام احمد رحمه الله هست جمهور علما امام شافعی و امام مالک و امام ابو حنیفه او را کافر نمیدونند اما مسلمان فاسق مرتقب کبیره بزرگ حسابش می کنند. چنین فردی لو؟ بعض افراد دیگر هستند نماز میخوانند، اما با این که نماز میخوانند، الله سبحانه وتعالی چه فرموده؟ سوری ارائیتالذی سوری معون بسم الله الرحمن الرحیم ارائیتالذی یکذب و فذالک فذالکالذی یدعو الیتیم ولا یحب الى طعام المسکین فویل للمصلین. در این فرموده؟ وای به حال نماز خونها وای به حال اونایی که نماز میخوانن. اونایی که نماز می خونن وای به حالشون پس چی شد اونایی که نماز نمی خونن میرن جهنم اونایی که نماز می خونن وای به حالشون آها ادامه داره کدام نماز خونها الذين هم عن صلاتهم صا این نوع نماز خونها بعد نماز ها به قول معروف کسانی که بعد نماز می خونن خوب نماز نمی خونن و نقطه دیگر که لازم است این اشاره بش بکنم اینه که وقتی ما تو قرآن میگردیم دلیلی پیدا میکنیم ای رو موضوعی رو در قرآن به کنکاش و جستجو و بررسیمی این گونه نباشه یا میخوام به مطلب رو برداشت بکنیم که یک تیکه از یک آیه رو بر بداریم بعد به عنوان یک حکم کلی تعمیم بدیم همه جا و این دسیسه دشمنان هست که یک تیکه آیه رو بر میدارن میگن قاتل المشریکی رکافتن قران در سوره توبیه گفته مشرکین رو همه بکشید پس اسلام دین خشونت دین شمشیر دین جنگ و قنریزی هست نمیخوان دستیسه بکنید یک تک از یک کلمه برمیدارند که کجا این فرمایش در چه موضوعی هست قبل آیه چه فرموده بعد آیه چه فرموده بحث چه هست اصلا در چه رابطه ای هست کدوم مشرکین اصلا سو استفاده از کلام الله سبحانه و تعالی میکنند این نکته است. ما وقتی یک آیه یک مسئله رو می‌خوایم نگاه بکنیم خب از هر کلام کلام هر بشه میشه استفاده کرد همونطور از کلام الله سبحانه و قبل آگه بخونیم در چه سیاقی در چه موضوعی هست مطلب در رباط با چه کسانی هست چه افرادی است چه موضوعی است بعدش میگه مسئله چه هست اصلا خب اینجا گفته لا در ل... وای به حال نماز ها در جای دیگه در سوره نساء میفرما لا تقربوا به نماز نزدیک نشوید نماز نزدین نشی خود مولا داره بخونش لا تقربوا و انتم سكارى به نماز نزدین نشی در حالی که شما مست هستید بحث تدریج تحریم خمر بود که هنوز به صورت قطعی آید برای تحریمش نازل نشده بود می‌خواستن اونا رو ترک بده اتیاد داشتن مثل چای و مثل آب می‌خوردن سر سفرشون میخواست آنها را ترک بده مرحله مرحله گام به خب می‌خواست موقع نماز اینا ننوشند پس منظور اینه که ما وقتی به سراغ قرآن می‌ریم درست بررسی بکنیم تکی از یک حدیثی، تکی از یک آیه ناقص در چه موضوعی هست بر میدارند و اونو تعمیم میدن حکم کلی اسلام صادر میکنند و برای ضربه زدن به اسلام متنفر کردن افراد از اسلام و این گونه مسال بر به آیه فویل و لیل مسلین وای به حال اونهایی که نماز میخونند اون نماز که الذین هم عن صلاتهم که اونهایی که از نمازشون غافلند یعنی نماز رو سر وقت نمیخونند یعنی در نماز سالینगारी میکنن اهمیتی براش قائل نیستن نماز رو با کسالت و سستی و تنبلی برپا می دارن نماز رو از وقتش به تأخیر می اندازند این صلاته كانت علی المؤمنین کیتابا موقوتا نماز درست که فرض شده ولی سر وقت موقوت وقت به وقت تعیین شده سر وقت باید چه, اف... چه بسیار اف... افرادی هستند که نماز رو خیلی راحت به تأخیر میاندازند به خاطر یا خواب هست خواب. یا به خاطر فیلم و هست یا به خاطر فوتبال هست مسابقات ورزشی و فوتبال هست نماز به تأخیر هم میشه هیچ چیز نباید باعث باشه نماز به تأخیر نماز فضایی هیچ چیز نباید بشه و همه چیز فضایی نماز باید بشه اگر انسان مسلمانیش میخواد درست باشه همینه بهترین عمل از رسول الله صلی الله علیه و سلم شد کدام بهترین عمل هست؟ فرمود است على وقتها نماز سر وقت خوندن نمام زهابی در سیر اعلام نوبلا داستانی رو نقل میکنه که از فردی میگه فردی روایت میکنه که خواهرم بعد از اینکه فوت شد و به خاکش سپردیم متوجه شدم که جواهراتی در قبر افتاده موقع دفن کردنش به خاک سپردنش جواهرات و طلا و چیزی بود اونجا جا مونده بعد نفش قبر کردم تا اونها رو بیرون بیارم آتشی از داخل قبر بیرون می اومد خیلی ترسیدم منصرف شدم قبر رو پوشوندم با خاک و به سراغ مادرم رفتم و گفتم این خواهر من چه کاره بوده برنامش چی بوده گفت چرا چنین می کنی؟ برای چه چه شده داستان رو براش نقل کردم گفت کار خاصی نمیکرده فقط این که نماز رو از وقتش به تأخیر می‌انداخته نماز رو سر وقت نمی‌خونه یعنی نماز رو می‌خونه ولی سر وقت نمی‌خونه چنین عقوبتی براش هست پس برای کسی که نمازی رو ترک میکنه چه عقوبتی هست؟ الله سر تقصیرات همه ما بگذارد و به ما توفیق بر پاداشتن نماز با بهترین کیفیت و خشوع و خضو در سر وقت عنایت فرماید آمین. پس این بحث نماز هست الله سبحانه و تعالی مدح میکند میستاید کسانی که محافظت بر نماز میکنند والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئكه هم الوارثون کسانی که صفات مؤمنان این است که بر نماز محافظت میکنند، مداومت میکنند. آنها وارثان حقیقی هستند وارث چه چی چیزی هستند الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون وارثان برحق جنت آنها هستند در جنت مندگار و جاودانند کلید در جنت با, ب... با... جنت با نماز باز می شود و روز قیامت در پرونده اعمال بندگان نگاه می کنند اگر در اون نماز بود و نمازش مقبول واقع شد به دیگر اعمال به صدقه به زکات به کفالت یتیم به روزه به حد به دیگر عبادتان نگاه می کنند اما اگر درش نماز نبود یا نماز بدون کیفیت و بدون قبولی وجود داشت دیگه از وقی کاراشن نگاه نمی کنند و هبا امنثورا مثل گرد و غبار در هوا پخش می شود و تمام عمالش باطل می شود و مهر ابتال می خورد و سرازیر جهنم می شود این قادر نماز اهمیت دارد و همینطور می فرماید ال... الذین هم على صلاتهم دائمون در سوری معارج والذین هم على صلاتهم یحافظون اولئی که في جنت مكرمون بر نماز محافظت میکنند آنها اونها در جنت هستند فا داستان دهنده آخر عمر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه رو ذکر میکنم باشد که عبرتی برای همه ما باشد امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه در نماز صبح در حالی که سوره یوسف تلاوت میکرد و امام بود و از تلاوت قرآن به گریه افتاده بود توسط یک مجوسی خنجر میخورد از پشت و از پادر میاد منتقلش میکنم به خانه از شکمش پاره شده بود از همه جا خون بیرون میزد و در خون زیاد و پارگی شکمش و سینش بیهوش شده بود از هوش رفت دوربرش همه نشستی بودند گریه وزاری میکردند بعد از طلوع آفتاب بعد از چند ساعت به حوش میاید وقتی بیند که اطرافش نیه ها میکنه مردان نشستن گریه میکنن صدای گریه و شیون زن ها میاید نمیگوید چی کسی مرا کشت چی کسی با من این کارو کرد که بود چه شد کجا رفت بلکه اولین کلامی که از دهان مبارک عمر بن الخطاب رضی در میاد اصل الناس آیا مردم نمازشون خوندند نماز چه شد مردم نمازشون خوندند یا نه جواب میدن بله مردم همه نماز خون بعد به پسرش دستور میدهد کمی آب برام بیار عبدالله ابن عمر از کبار علمای صحابه هست بهش میگه برو برام کمی آب بیار فرزندش فکر میکنه میخواد آب بخوره وقتی آب میاره میگه وضوع برام بگیرید میخوام وضوع بگیرم نماز بخونم وضوع برایش میگیرند میگه مرا بنشان میگه چطور طور طور بنشانیم روده ها بیرون میزند پاره هست با امامهش بسته بود عدالله ابن عمر ش ولی راضی نمی شود بزور می برای نماز خوندن و نماز می‌خواند. امیر المؤمن عمر بن الخطاب رضی اللہ. عنه بعد از که نمازش تمام شد گفت چه کسی مرا چه کسی این کار کرد. گفت برده مغیرت بن شعبه مجوسی اون این کار کرده. گفت الحمدلله حمد الله سبحانه وتعالی رو می آورم کسی که مرا کشته و مرا زدت. یک سعیده هم برای الله نکرده یک نماز هم نخونده نگف یک صدقه یک روزه یک حج گف یک نماز هم نخونده لیاقت نداشته یک نماز هم بخونه چین فردی مرا کشته حمد و سباس الله را به جامعه پس این هست قضیه نماز امیدوارم که الله سبحانه و تعالی بینمازی رو از جامعه ما بر بکند چون در نسل گذشته ما آبا و اجداد ما رشتفیدان و بزرگان و گذشتگان ما به نماز خیلی اهمیت می دادن. اما قضیه بینمازی یا سستی در نماز در نسل جدید بیشتر مشاهده می شود متاسفانه دلایل مختلف. حمله های سنگین دشمن در زمان قدیم به این صورت نبوده اما الان بسیار سنگین شده حمله های فرهنگی و ضد دینی علیه مسلمان ها متوجه قشر جوان جامعه زیاد هست. و جوان رو از دین از نماز دور نگه می دارد. مسائل زیاد مشغله های زیاد قبلا این مشغله ها نبوده واقعا نبوده و مردم خانه‌دار زندگیشون پیشون می‌بردن، نیاز به این همه تلاش کردن به این همه دویدن دنبال امرار و آش نبوده توقعات خیلی کمتر در سطح پایین تر بوده به امور اخرویشون خیلی بیشتر به عبادتشون بیشتر می رسیدن. اما الان هر شخص می رود هم عقب هست اینها باعث شده که حالا توجیه و بهانه باشد برای کمتر اهمیت دادن به مسال و عبادی و على خصوص نماز مسال اقتصادی جای خودش شبکه های اجتماعی موبایل تبلت بازی های کامپیوری بازی هایی که در موبایل هست شبکه های اجتماعی اینها هم جای خودش مزید بر عظ شده برای اینکه نمازی ترک بشه یا. سر وقت خونده نشه چطور باشه نماز ترک بشه؟ این گونه که شخص تا ساعت دوی شب در واتزاب، بایبر، تلگرام پرسه می زند. نمی توانه نماز صبح بخواند، و خواب می علت همین هست <تصفيق> یا سر وقت نمی خاند. در حال چت کردن هست ولی اگر در واتزاب باشه دوستش آنلاین باشه در واتزاب حضور داشته باشه پیامی وش بده سلامی علیک که بکن جوابش نده ناراحت میشه دوستمی من پیام دادن جوابم نداد الله سبحانه و تعالى صداش میزنه حیاله سالا حاضر نیست بره اون الله سبحانه و ناراحت نمیشه ادای دوستی و محبتش داری اینها در نظر داشته باشه اینها بلایی شدن متاسفانه به جایی که ما نعمتی باشه برای ما برای پیشبرد اهداف دین برای تبلیغ دین برای نصیحت برای موعظه برای علم ما متاسفانه اونها گناهی ندارند ما اومدیم اونها رو تبدیل به بالی برای گردن خودمون کردیم برای دور کردن خودمون از الله سبحانه و تعالی ولی برای نزدیک کردن به الله سبحانه و تعالی اگر هرچی سر حساب کتاب و وقت خودش و درست به اندازه کافی و سر وقت درست استفاده بشه خوبه بارک الله لیا و علیکم بالقرآن و سنت و نفعنی و ایاکم بما فیهما من الایات والحکمه اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه إنه جواد کریم ورحمه وهو ارحم